درست یادم نیست از چه سالی به ها آشنا شدم اما خوب می‌دانم که من نوزده یا بیست سال بیشتر نداشتم دختری پرجورت بودم خودم میگویم پرجرأت. اما دختران هم من مرا پر رو میدانستند میتوانستم به کسی که هرگز او را ندیدم و نشناختم خود را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم از مطالبی که اصلاً مورد علاقه طرف نباشد از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود جوانها همه از این گستاخی من خوششان می آمد و به من پر و بال میدادند در مدرسه بچه خرفتی نبودم اما استعداد من آنچه از در من وجود داشت بیشتر گل میکرد تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا ازیزدردانه بار آوردند مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تأثیری در اداره خانه نداشت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 پدرم که مرا لوس بارآورده بود خیال میکرد که خیلی با استعداد هستم به من میگفت تو خیلی هنرداری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق ورقبازی نمیکرد یا درباره سیاست روز و مسایل جاری مملکت صحبت نمیکرد برای ترزیهٔ خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان میداد و در تمجید من شاهنامه میخون اگر خوشگل نبودم کارم را جدی میگرفتم شاید چیزی از در می آمدم. اما چون سرسری و دمدمی بودم ماهر مانهی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته می شد از 16 سالگی حس کردم با صورت و جرعتم بیشتر میتوانم توانم کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم یا میتوانستم کسب کنم در نتیجه هیچ کاری را جدی نمیگرفتم. همیشه راه سهل تر را انتخاب می کردم. در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من دو سالی بود که دارو معالات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم گفت که ماکان در نقاشی در نقاشیات گرفت و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام می گذارن. تابلوهای های او را میخرند و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کند از جمله گفت که درس خصوصی هم می دهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت تا دو سه ماه پدرم و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفتگو داشتند مادرم میخواست مرا شوهر بدهد اما پدرم مزه زنداری را چشیده بود و ته دلمهی داشت خودم شوهری را که باب طبعه است انتخاب کنم گاهی کار به اوقات تلخی می کشید روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می‌آمد، دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگوهم رفتم به کارگاه او نمیدانم من وقت نتوانستم روحه خودم را رو تحلیل کنم هرگز نتوانستم. نه اینکه به فکر نیفتادم، نه نتوانستم به عددی که منو وادار به کاری کرده که شایسته من نبود پی ببرم کارزش، کاری که برازنده دختری از طبقه من نبود کردم اما هیچ وقت متوجه قبحان نشدم نمیدانم چه بود و به چه دلیل در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم فهمیدم که با یکی از با یکی غیر از آنهایی که باهاشان سر داشتم روبرو شدهام. جور عجیبی با من سلوک کرد در حالی که دیگران همه تحت تأثیر خنده و گشاده روی من می رفتند اون نه فقط به خنده های من به خنده ای که از سعیم قلب و از چشم و دهان و گونه و لبان من برمی و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود توجهی نداشت حتی احساس کردم که بی هم می کند اساسا، آدم مغرور و خودخواهی نبود اما خیلی طول می با کسی اخت شود لایه از سردی همیشه قیافش را می‌پوشاند و خیلی طول میکشید تا درون خود را به کسی بنماید برخلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد اما سردی و خشکی آن چیزی نبود که مرا برنجاند مثل این که من اصلا برای او دلربا نیستم به من بدی یا بیهترامی نکرد کاش میکرد تا اقلاً آدم آن،, آدم آن نقاب دروغی را که در این موارد به صورت می‌زند برمی‌داشت و او هم مجبور می‌شد درون مرمز خودش را نشان بدهد اما همین رفتار آقلانو و به خالی از حوجه او مرا آزرده کرد وقتی خواستم ترهایی که کشیده بودم را به او نشان بدهم رفتم پشت میز کوچکی نشستم مثل اینکه می‌خواست تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ را که تماشا میکرد زیر برگهای دیگر میگذاشت و دومی را تماشا میکرد تمام این بازی شاید یک دقیقه طول کشید من منتظر بودم که مرا ترقیب کند انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار ساختم اما قدم میخواستم بگوید خب بد نیست. کجا یاد گرفته اید؟ به داخره مبتلی هستید و باید یاد بگیرید. در عوض خشک و سرد آنها رو به من پس داد و گفت انشاءالله خوب می شود. یکی از کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار می کرد. این دخترک از بچهی در خانه ما بزرگ شده و در شانده سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشت و سر به نیست شده بود. من این زن را با بچهش با رنگ کشیده بودم و به خیال خود زجی را که این زن تحمل میکرد در وضع نگه داشتن بچه در حالت چشم ها و در دهان باز او گنجاده بودم دیگران که این طرح‌های من را میدیدند یک کداق چه تمجید تمجید میکردند. در صورت که او نه فقط یک سخن خامیز نگفت حتی آن را بیش از طرح‌های دیگر هم که بیشتر منظره طبیعت بود مورد توجه و دقت قرار نداد این مرد در سخن گفتن عجیب صرف جو بود. برای هر کلمه ای که میخواست ادا کند ارزش قائل بود. وقتی او را به من برگرداند من کمی نشستم. شاید به امید اینکه به طور کلی به من توضیحی بکند. اما هیچ نگفت. گویی میخواست به من بفهماند خب اگر دیگر فرمایشی ندارید مزاحم من نشوید. من هرگز چین آدمی را در عمر خود ندیده بودم. می توانست بگوید که اگر میخواهید نقاشی یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه می شود. آخر وقتی وارد کارگاه شدم گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم شیدم که درس خصوصی می دهید اساسا این مرد علاقه به تدریس داشت از همان تعلیم شاگرد خصوصی بعد تا این مدرسه که امروز شما نازمان هستید درست شد نمیدانم چرا؟ این مرد از من بدش آمد والا ددینی نداشت که من آنقدر سخت بگیرد. من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد. ماند مردم دیگر با من گرم بگیرد. خنده های را جواب بدهد و حتی اصرار داشته باشد که باز هم به او رجوع کنم و اما یا اقلن یک کلمه بگوید که فلان تحر من فلان عیب را دارد. نه برعکس. هرچه من بیشتر می نشستم او سرد تر با من رفتار می کرد. آخر سری دیگر خنده در لپای من خوش شد. همان برخورد اول به نظر من تحقیر آمیز بود. اوی نادانس نمیخواست به من توهین بکند. چه چیز من برای او بیزاری آورد؟